اللهم الله که در مانحیه در باب انتظار به من شده روایت یه محضن دیگر یه یعنی هست هست نام قاسم استر برطال بر اولی رو که ما الان از کتاب و فکاته من رو این خوندیم از این یا نه این شان یک کلماتی پرمودن که حاصل که این روایت رو قبول یا به صحیح بارد بکن. من توبیه دادم کلماتیشون رو احس کردن که نظر رو باردیشون رو دارند اینه که ما باید بین مخاطبات با روایات شفهی فرقاید بشیم نظر این کنید <تصفيق> وقتی مثلا یک روایتی میدونیم مثلا فلان مثلا جمیل ابن دراز از موسیب سعدار مثلا از موسیب مسلم این عبی عبدالله. خب ما در اونجا دنبالی هستیم چون این راویه اخیر این موسا مثلا کیه که از عبی عبدالله نهر کرد مجهول ضعیف استقره است اینها اگر مجهول باشه را چه نبول نمید. و همین طور در مکاتبات ایشان نظر اون بر این است که بین مکاتبات و بین روایات شفاهی فرق های چون در مکاتبات این آقا میگه که کتاب فلان و جواب امام اینطور بود پس در اینجا اعتبار به اون راویه اخیر نمیخواد اصلا اون مجهولم باشه باشه مهم این است که راوی ما قبل اخیر اون نامه رو دیده اون استفسار رو دیده و اون جواب امام را علیه السلام دیده اتقوام اون شخص رو دیده. و چون در اینجا محمد ابن ایسا به عبیده و از پس میتونیم قبول بکنیم این در حقیقت ما بیاییم بین این روایات با روایت مکاتبه با روایات مشافه فرق بگذاریم این دوتا ماهیتا با همزیگه فرق میکنم از وقت در اینجا روایت محمد ابن ایسا ام ابل قاسم سیغل و ولده اینطوری قال که تبو کدی اونها این بحث سر این گوشت که کلامی به کی برمیگرده به محمد بن عیسیا پس محمد بن عیسیا ناقله اگر اون ناقل شد حدیث میشه تهیب این ظاهر عبارات مرحوم اصلا همین تاکید داره که اما اگر بگیم نه قائلش قائل ابو القاسم صیغرد اگر قائل ابو القاسم صیغرد باشه اون حکم روایت شفاهی رو پیدا میکنه و با جهت اون موضع به تحدث این یه مسئله است. اگر اندام جیوز آل کردند، البته این مطلب، این مطلب اخیر که از کردیم یعنی اگر تهر در تهر ابریم بگذاریم، چون راوی اخیر حالا در تهریم ما هم، در, فرع فرع. در فرع ما هم مجهوله. اگر مضمون سوال و جواب رو نقل کرده با راوی شهواری فری، چون شهواری می‌کنه، یک کسی میاد پیش ای که از دوران میگه من اصلا خدمت فران آقا این سوال کردم و این جواب داد. یا میگه من با نامه سوال کردم ایشون تو جواب داده چه فرقی می‌کنه به لحاظ خوده اگر ناقل خود نویسنده باشه یا گوینده باشه به لحاظ حجیت فرقی در جایی وجود نداره اون که میتونه فرق بکنه این از که اون آقای که این مطلبش اینه نامر دیده باشه مثلا یا ناقل باشه فرقی مطلب درسته بلکه چون قادورد حالا یا به تعبیر ایشان دیداله ولی تو تعریفی همین بیده جواب غالبا جواب هادی میشه ممکن است به این لحاظ فرق پس کردیم ما اون چی که الان از توقیعات و مکاتبات داریم می تقریبا به 5 قسمت تقسیمش کنیم 4 میشه دیروز بیشتر پنجمی رو رفت توقییه بیشتری بود که واضحا بحث میکنه اون راوی ما قبل اخیره کسی که نقل میکنه از وکلا اهل الهی سلام و خودش سوال و رو خونده اینجا جهالت اون کاتب اصلا نداره چون وکیر هست ایشان وکیر نیست وکیر هست اما جواب رو نمیشت خونده این درجه دو سوم سبا که اون ناقل وکیر نیست از بزرگان اصحابه از فوقات از بزرگان از علماه این استفتاد جمالایی کرده خب اونم سورت سوم میده که جواب رو خونده به خط اما این باز عرضشش بیشتر. اگه 4 یه جواب نخوندم فقط یه کتاب اون فکره با علی السلام میگه در خوب خب این هم نسبتاً بعدیه چون اون راوی مرد بزرگواری هست دیگه همینش رو قبول میشه حالتشو میشه میشه قبول کنه شواهد دیگریم هم باشه میشه قبول کرد یعنی بدی کوره مگر اینکه شواهدی باشه که ایشون داره داره نه بحث اول توضیح پس ما پژوهش می‌کنیم که خود اون راوی از این که فیکت نامه رو نوشته است، نوشته، خود او همچنین بزرگان نواشیه، اون دیگه مشکل بیشتر میشه. یعنی خود این نویسنده این نامه مشهود شناخته شدیم. اون کسی هم که از اون عرق نمی‌زوده، اون هم شناسه زدیم. حالا این توان از همه ارزشش کمتره، یکی خیلی. این پژش. اما اونی که الان به ما نحن فیه رفت داره اون به قولت محمد این ایسایه یخی تیمی از ابقاسم سه احتمالا از قسم سرمون باشه به احتمالا از اسم شارم باشه یعنی این احتمال هست که ایشون اصلا این توقیع رو و این استفتار رو ازشون گرفتن که درها جمع کردن در یک کتاب احتمال هم داره که نه فقط دیدم توش ایناها دیدم نگفتم احتمالش هست یعنی احتمالش هست که اون آها نه کرده احتمال که ایشون دیده باشه جوابه اگر نمیده جوابه میشه چوابه اگر جواب دیدن میشه هست. و در ما نحنفیه چون بعد خواهده حالا اینجا رو بگم تخصیم توضیحش بعد یه رواید دیگه هم داریم که نه کافی هم همون دیشه اون رواید امال قاسم سیخت نه امال قاسم, انال قاسم چون در توی مکاسه و استاد نامی ازید برده میشه این اونجا بکنیم اون قاسم سیغن تصریح داره کتب تو اله رزا علیه السلام اینجا داره کتب و اله. در نامه های عب Lil Gاسم سیغن کتب تو اله کتب و اله نامه دیگه هم داره توش کتب و اله اما در اون نامه ای که القاسم قاسم entreprises اول جا قاسم اونجا قال کتب تو اله رزا علیه السلام و فقالقش رو بعد عرض میکنم که بعدم حضرت صحبت تک صحبت و به کتب تا ادامه جعفت ثانی حضرت, حضرت داشتیم که این تلطان بودن تو مشکل بود حالا فیدن تمام این یک روایت ما داریم اونم به مکاتبت دوست مکاتبت یکی کرده جواد صحبت داره و راوی او القاسن سه حالا غیر از که خود قاسم سیغل مجهوله. چهال عبو قاسم باشه یا نباشه. غیر از مجهول بودن ایشان مشکلی که در اون روایت وجود داره اینه که اون راوی از قاسم سیغل هم مجهوله مشکل اون روایت اینه اون روایت در کتاب کافی ذکر شده حسین حسیدم محمد استاد ایشان ان معلق محمد بسری. ایشان از علمای بسری هستن که مطمئن به قلوب هم برام ندارن البته ما نسبتا روایات مبی نداره که هرالش صحت و صغش منحصر به معلم محمد این به در مشکل این جد نداره داریم روایات دیگری که صحیح بودن که هرالش منحصر در معلم محمد مرو استاد خاطر کامل هم گفتم درست بعد برگشتن یکی از جهاتی که معنی ایشان تأثیر داره اینه اونگاه سوال می‌ذارن به این تغییر مبدایم مربوط به استاد در کجا اثر بیان داره یه از جایی که اثر بیان داره ما طایفه از رمارد داریم که معلم محمده این چون غالبا اون از معلم محمد مرکز تبسیده که از اشایری قوم بنام محطان محمد اشکر استاد ایشان استاد کنین اون سر هست جبه برم معلم محمد هم غالبا به هست مثلا از وحشان هر میکنه مثلا نبابسان هر میکنه یه این هر از لولا معلم محمد صحیحه مرحوم آستاد این دوازه صاحباً تصیح میفرمونه اخیرا برگشتن دیگه چون تصیح معلم محمد پیشیشون منحسه در کامل زیارات این بها میگن که مرحومان و مرحوم معلم محمد در تصیح علیه ابن الراحیم روایت نداره مرزیار ایشون از کامل زیار زیارات و تصیح کرده. کردن مرزیار از تصیح و مرزیار از کامل زیارات و از کامل زده ازشون خیلی تأثیر ندارن کسی روایی نیست دارن خلصیونه کسی روایت هستن مثل این محمد معلم محمد نسبت هم زیاد دارد معلم محمد این محمد نه عبدالله واسطی این به مره نمیشنسی این شو نمیش معلم محمد یا اقل یه دعیف نوشته او اقل ان القاسم سیغل قاله کسف این روایت مثال مثلا پنجم میشه که هم خود طرف مجبوره هم اون که از او روایت کرده مجبوره اون را میمشه داشت من احتمال دیدم محمد عبدالله واسی تحریف باشه تحریف باشه شخصی دیگری باشه اسمش واسه چیزی دیگه لیکن مجرد احتمال دیشن خیلی نگاه کردن هرچی محمد عبدالله بود نگاه کردن حل نشد مشکل من تو بسید چطور مشهور ما همان اسمش ما کردیم پنج قسم از روایات وجود داره این پنج قسم رو باید هر کدام رو جداگانه برای شکل حساب خاصی پس این روایت محمد قسم سیغل فعلا یدو رو انروهو به این قسم سه و چهار رو. این داجه به اسمان دیگه رو بحث کردم من در جوه دیدم که خیال حیدش نکردم ولکه بیشت به کتاب نجاشی دوارت رو نباه کردن در تألیفات مرحومه محمد ایسا یختی کتاب نام توقیات داره احتمال همین باشه احتمال نمیتون برای کتاب اینام یک کتاب اینام المسائل محرمه داره که نفهمیدم یکی هم کتاب توقیات معلوم نیست توقیات خودیز اونایی که از الله باشه موردش مواردش مین استتاعاتی که جماری کرد ار کردیم شواهد نشون میده که مرحوم محمدابن عیسیی اختیبی استفتاعات اصحاب را جواوری کرد و لذا انسان به قضیه مجهول بودن اونها خیلی مصتور نیست چرا چون اعتبار ما بیشتر میرا بی رو خود محمد عیسی و ایشان یک ای شخصیت علمیس بدو البته هنوز یک ابهامی که ما در حد ایشان ایشان چش از لغوی جنجال برانگیزه، بحث زیاده. ای تضعیف کردن، ای نهایت توصیح کردن. این دقیق کردن دین توصیه کرده. ان شاءالله چه خیلی کلیدی باشه اونجا متعرضی که خیلی کلیدی. ان جدیدی من متعرض احوال ایشان شبهات و شبهات رو پیش آوریم ان این روایت محمد بن عیسی ا انصافا از همون کتاب مسائل یا کتاب باشه. در در اینجور جاها باید نیست سیاه و اغلایی قبول باشه نه به خاطر اینکه ایشان وکیده به خاطر اینکه یک شخصیت علمی و البته من هنوز یک ابهامی دارم درباره ایشان که آیا ایشان که از علمای وقت داده ایشان از درمهای یختین محمد ابن عیساب ابن عبید یختین یختین از دعات بسیار مهم منی احباس. یه یک در جدید در دلیودی. از کسانی که در سفر و دادند، رفت و خیلی کمک کرد برای به سرتر بودی داره بنا اما بچه های او، ادیشون شیعه هستن. ما می به خلاف وقتی داریشون جلب نیابد بود اینا با اهل بیت بودن علی که خیلی مشهور علی می‌آییم. ابی دم هم می‌آییم. ابی دم می‌خویم. یعقوب می‌خویم. احتمالاً آنها و ما عیسی، پس برادر زاده علیه همه معروف میشه و چون از خواهدها یختین بودن باید اینها یختینی میگوند محمد عیسی ایسا یختینی یختینی به خاطر مثل به جمعش خود یختین را دیمونی دو جالی ها مثل همه هم. بودن نمیشیه بوده همین نه فقط شیه نبود از بزرگان بنی عباس تندروهای روهای بنی عباس نمیشیه بوده و احتبال را هم یه مقداری پسر ایشان رو به خاطر خدمات پدر چیزی نمیگفتون و هر حال ایشون ثابت مید. هر ما با مرحومت توسطری ایشون یه مقدار شواهد نمشتند که نه انسان وقت نگاه میکنی به تاریخ رو ایشون کاملا واضح هست اون دعات بسیار کند و مثل آتشینه باید عباس هستان میشین اما بچه هاش این ستا احتمالا یه او با عبید و علی علیه میگرد منعی گرد ماکان یه احتمال از ایشون به قم آمده باشه یه احتمالشه یعنی احتمال ما چون ادعای از بزرگان قم شده هر کسی که ما تاریخ نداریم که اینا بغداد رفته باشن مثل سعدی ممدوح مثل صفوا ما بزرگان قم مثل اون بزرگان اون اصلا حالا یا ایشان قادی اون بزرگان حدا رفته یکی خود احمد بن که نمی کنم این ها رفته باشن. من به احتمال قوی میدم که ایشان قوم آمده باشه زیارتی برای قوم آمده و این تراس شیعه رو در قوم نشد کرده آن الان چیزی ما در کتب رجال نداریم اصلا اینکه از از اینجوری متصد متصده نیمت رفته باشه یکی من نگاه کردم احتمال کردیم ایشان به قوم آمده و در همین سفرش به ایران بوده که ایشان احتمالا جمع آگر این از مردم متفرق بوده قیلی افراد هستن اسما شدن و ماضحی دید. که توی استفتعاته هست شاید من اشتباه هم کتاب و توقیات بوده من تو ذهن من هست که من مسائل و رجال بیدن مسائل و رجال لاغل حسن سادس علیه گفماکان ایک احتمال داره که از همین کتاب و ایشان باشه اگر از کتاب و ایشان باشه اون وقت ارزش بیشتری پیدا میکنه چون حتما خونده جواب رو دیده بعد تر که کتابش کردیم بیشتر ارزش علمی پیدا میکنه.طلا یا حالا ارزش علمی این روایت صحیح بودن و صحیح نبودنش تابع این نکات خارجی که کردیم نه لکات سندی چون مطاله دیگری هم حتما بخورم یا عبارت ایشان بعد وارد بحثش. هر از ایشان؟ بیچون <تصفح> نوشتن برد ولیث السند من یتأمن فی الا احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولید بله هر همین اخیرا روایتی بود که از فکر ابن ولید احمد ابن ولید معروف اسمش محمده. محمد محمد بن حسن احمد بن ولید پسرش احمد که از اساتید مشایخه مرحوم شیخ مفید است میراث های پدرش میراث رو بنی رو برایشو نبرد پسر ابن و عید معروض ایشان درش توصیح نشده سالان تازیه از کنم و از مشایخ مرحوم شهر مفید اونایی که توصیح کرده ندیمه لیسفستند الا احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولی و محمد ابن ایساب ابن عبید البته این تعبیر ایشان لیسفستند الا احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی الان خب اگر شما بخونید حجب میکنید شد بله این روایت در کتاب کافی آمده در کتاب کافی است. مرحوم استادش محمد بن یعینی هم الله علیه و محمد بن یعینی اشعری قمی هستند. از محمد بن یعین نوبید در الحافصین سیر. اینو جوردم، در درورانی نیست پیدا. صاحل مرحوم استاد اشتباه کردم با طریق نجوی شیخ طوسی. چون شیخ طوسی این حدیث رو از طریق صفار اینا دانش داشته. چون از اون با اشکالی ایشان نه بالله بله بله شاید نظری ایشان خیلی عجیب از ایشان چطور شد اینمت تا این عزیز در کافی هست سر نوری نمیشه تحضیح هست تا در تحضیح دو طریق به کتاب صفحه که یکیش احمد است این اشکال در های سرّی و رجالی در اون مقداری که ماها الان متعارفه منده. غالباً به مشایخی که ما به هر دوی یه گیر کردن و همون سران مراجعه می‌کردن چیه رجال رو ما انسان دوره مستدل ببینه و احاطه داشته باشه ببین هر وقت رجال درست نمی‌شه ولی سفر سرّمانیه تأملاتی الا احمد بن محمد بن عثمان از همین جلد اول مکاسب طلب خود می‌شنوفت صفحه 50 و محمد ابن ایسحاق ابن ابی، و هما از سگتان علی القبای، هر دو رو توصیت کرد راجع به محمد ابن ایسا من جداگانه دخانه کرد. کردم. اما راجع به احمد، نقطه خاصیشون نبودند. شونم گفتند از اساسیت مرهم شیخ موفی دو حجت دست دادند. امروز مشایخ اجازه دادند. هر فیشون بعد نیست، اما شیخ اجازه بودن گاهی مثل همینه، مرهم شیخ موفی هرکنایشون سفری به بغداد آمد پسر سر من رو از رو آثار پدرشی این رو داری از آزادی ایشان به در آثار این گرفتن اینجور مقداره ها کافی نیستن درسته شیخ اجازه هست اما شیخ اجازه اگر داری اتصال سند باشه خیلی عرض شیعه نده بعد ایشون فرمودن این راجعه دارم بحث سندی شما اینه بحث سندی شما که مطلب دارم من رو بخونم حالا بله, بله. تا تمام احبارتی ایشان. و المزنون لولا مقتوع به تبی ان قوله نعمل السيوف مصحف انقول لهم ذق مد السيوف این چون بحث ایشان در کوفت بیت است من غلافه حال عملش هم چیز نیست بلکه اهماله فرمها شبیهتان کتابتان طل عربی الهاست شباهت دارند اما به مجرد کافی نیست و شاه له علیه اولا روایت او القاسم سیرا چون اون روایت قاسم سهرم که الان اسمش بردن گفتم خودمونم مجموعه از ظاهر انهو ابن و عبل قاسم چون اون داشت اول قاسم این قاسم پس اون پدر اینه حالا این استظهار ایشان از کردم همیشه به قطعه هر مطلبی که نیم کچی و بزرگ نکات فنی شده در نظر بید از کجا این استظهار فرمایدن رجالی بفتی این مطلبی از ظاهر, از ظاهر انه ابن عبل استزهارشه از خود کلمه چون روزه داشته اول قاسمه سیغل اینجازشه اول قاسمه سیغل یکی عبوزیت پس چون اول قاسم نوشه پس پسر ایشانه خب به این مقدار که یکی استزهار دیگه چون این هر دو مشهول هم القاسمه سیغل هم مشهول اول قاسمه قلم هم مشهول و عکس هم هست یعنی پدره از حضان حالی نحل بفنه پسر از رزان حال بفنه کپه بود بهتر ب این استظهار ایشان درات فرمودید اگر ما کپکی بود بهتر بود خیلی احتمالش بیشتر بود که پسر از ازادان پدر ازادان علاوه بود پسر از دادی اما اینو ترجمه کردن که فرموده از ظاهر فرمو انه ابن عبدالقاسه علا یا حال اینم ما نفهمیدیم چی غیر از لفظ یعنی هیچ نکته ای غیر از اینکه اونجا داره ال قاسم استظهاری میگه غیر از و این خیلی بعیده چون حتی مگر اینکه مثلا کتابو الی رو بدیم الی نژاد امام و رو جلو بدم یا موسی بن جعفر مثلا مثلا کسی نکنه امام صادق جعفر نذیره این که و ما هم موسیقی بزنگ. موسیقی بزنگ. موسیقی بزنگ. از ظاهر ابن عبل از و آسر نه هو ابن عبد قاسم یکی از آن معاصران دیدن نشان ما فهمیدن که یکی است مثلا قاسم سیغند ما عبد قاسم سیغند این که اشتباه شده مثلا عدی از اینجا گرفته مثلا و اینو در یک روایت هم یک روایت خب این هم خیلی بعیده چون الان مثلا قاسم سیغله میخونم اون داره کتب تو الان رزا در نمیشه کتب تو الان عبی جعفر کن تو کتب تو الان عبی این رواید هم که ظاهرش این که به خاطر حال محمد بیرسا هم که شده ظاهرش این است که از زهادی نامنه میشته شده خب در اونجا بینیده کتب تو الان عبی الان جده مناسب این بود اگه یکی باشه مناسب این بود که بینیس الا یان دعوی اینکه که این آقا پسر اونا هست. یا اون آقا با اینها یکی یا قاسم سیغلی یا اول قاسم سیغلی که اجتماهه اینا هیچ کدام رجعه علمی نداره. حال کتب تو الارزا علیه السلام حالا ایشان به خاطر کلمه علمی اعمال و اغماد استی و من جلود الهمور المیته فیوسی و ثیابی فتوسی و ثیابی الباس های تا او ها شبه اصلیدی به سیغه سوال باشه یا به سیغه سوال نیست من نماز خوندم تا عارف. توی لباس هم نماز می کنم. جاهل هم خود مرحوم کنه عنوان باب رو این رو من باب منصلاف نجس عدلا اون جهل هم خود مرحوم کنه اینه این لبایت مرحوم کنه این شو عباب و برده ها اشتباه نشه توی محکاسه با این ها این لبایت آسم سیغل این ر قطع تعالی علیه السلام الیه خب این هر کسی که این آقا باشه حالا یا پدرونه، پدربونه، خودونه من نمی‌فهمم اول جوانیش بوده قطعاً این روایت به لحاظ ذرافت‌هاش و عناواش خیلی فهم میکنه در اون روایت وقتی که میگه ببینید لا یجوز و فی و انما علاجنا جلود المیت ده در ده لا لا یجوز و فی اعمال خیلی نصیفن نیست که هر به قالب نجاست هم باشیم فعلا ما مصفر نیم آیا استرار این احکام رو برین یا نه؟ داره داریم مرد مولایی تاول قاسم سیقل در سوال فیحل لنا عملها سوال اول انتفاع به جلوده میده به شراعه ها و به آه ها سوال دوه خرد و سوال سوم و مسها ها به ایدینا و سیابنا قال نجس هست یا نه؟ سؤال و نهن اصلا لیفی بیا بدن خوبه از این ابوالقاسم تو اون نام مردم مولاییه خیلی خشن چه تا سوال علمی خیلی لطیف اضافه خیلی معلوم میشه مرد ملایی بوده اینطور نبوده که حالا فقط شفی فروش بوده معلوم میشه با اصطلاحات با اصول کار آشنا بوده اما توی که روایت ایشان این داره انی اعمال و اقباد از سیوف منجلود لوحور المیته فتصيب و سیابی و اسلبیا نه از بهش سوال میکنه فقط بحث سؤال از نجاست و از تهارت هم همین فهمیده مروم کولینی هم همین رو فهمیده نجاست و در باب نجاست سل در سلات رو به بقید پس این که میگه یک روایت یک راویه یک, یک سوال این بینه که از آنجا استرار داره که یکیه فکتب تو الاعبی جعفت ثانی کرده جواد باشه اینی کنی کنی کتب تو, تو الاعبی به کذا و کذا اصعب از ذلك علی هر ثبت و احملوها البته این سندشم برمی‌کنه عرض کردم این سندش محمد بن حسین بن محمد اشعری زید بن محمد آن معلم محمد آن محمد بن عبدالله واسطی آن القاسم سیغار این با اون‌ها و زید محمد بن یسار ابیدی و خیلی برمی‌کنه هم را این هم قسم پنجمی که من عرض کردم که هم خود القاسم سیغار مجهول نمی‌شناسید هم راوی از ما مجهوله نمیشه است الان فکتب تو الاغیجه فلسطانیه نیکن تو کتب تو الاغیجه و کده و کده فسعوب دانه که انه الان فسعوب که انه چرا احتمال داره بخاطه این که خیلی ملتزم داشته وقت نماز لباسی عوض بکنه اون نکات دیگه بوده فسرف اعمال ها من جلود همور الوحشیت ذکیه از گورخر از پوست گورخری که تسکیه شده زبه شده. جلود الهمر روحشیه، آنکیه. دوره خیلی که فکر کردم علی سلام علی، کل اعمال البر بسعب راه دیار حمله کرد. آمده ای که را کرده، چون یه سعاب داره که شخصی تون سخته و این یه نجد نجدیله و تعلیم میکنه. سعاب داره که علی گنیشی. سعاب که او درست میشه. کل اعمال البر بسعب یار حمله کرد. یار حمله کرد. آرزو مجلسی در مرا آتی احتمال داده کل اعمال سعب. کاله کیلو که خیلی زوغه دور از آبادی به رحمت الله. بعد فضله که زوه کل باشه کل و هم خب واضحه کل دید دید دید. تو هم دوت احتمال داده کاله کیلو و کلی کیلو باشه علایه حاله خیلی اون هست دور از آبادی فه امکان ما تعمل حالا این مهم میشینه اینی حضرت جواب که امکان ما تعمل و وکیان ما به نظر ما روایت قابل قصصی خلا نه میخواد خواد همین رو بگیم اینجا امام صریح گفته دیگه یعنی امام می خواد دیگه بفرمعه آ اگر از راهی شادن تقیه در اینجایی که سختشون چون خود طرف گفته خودان من از پوست اون گور خری که تذکیه شده اون گور خالص تذکیه بودی بحث نمونده والا بعد ایشو میفرسه فه ان نظاهره ان مکاتبه المشار الیه ها فی هذه یه المکاتبه سر متقدمه ایشون هم مثل شاگر بهشون اعتباد بدن که همون مکاتبه باشه هی سکان ولد ولد عبلقاسم من جمله مکاتبین این چون دارن عبلقاسم و ولدیهی مثل این ولدیهی به امام حادی توی جانه هایش کترنان الابیت مثل او آباد و احتمال کونل قاسم السیغم بیره ابن عبلقاسم السیغم بعیدون من فهم این از لفظ ایشون هیچ شاهدی نه از کتب رجالی نه حدیثی هیچ شاهدی نه این روایت هم راویش دو نفره اون به روایت محمد بن و احتمالاً یکی دیگهام باشه و این روایت راویش جناب آهای محمد بن عبدالله واسطی خیلی این احتمال اتحاد این روایت بعد فرمودن ثانی است ان عمل السیوف به معنا صراحت ها که ظاهر اعمال ها اون به معنا تصویر ها یعنی عمل سیوف یا ساختن شمشیر بوده یا تیز کردن و براخت کردن شمشیر عمل مستقلان مستقل لنکان فی از عزمه در اون زمانها ها فی غایت ال اهمیه و غیر و عمل تقنیده ها این از قلاف شمشیر درست کردن لما نمیشون از کجا این استظهارو میفرمونی با در زمان قدیم اینطور تقسیم کارها و شغلها نبود مثل الان یکی سیفر از اون, اون دستی صرف صرف مال نفاس و دورشکار هر کسی یک نفر دیگه او دیگه ارزش این نداره که هر تیکشی مثل ماشین ادا هر تیکشی یکی بفروشه معلوم نیست کسی که در بازار شمشی بیفته یه قلافی که باشه نخوره این شمشیر طنار به چیکار می‌کنه احتمال بسیار قوی داره که پیغل برای اون کارش به حسب لفظ عبادت بر راخ کردن و تپیز کردن شمشیر تپیز کردن شمشیر فقط زبانه ما اینطوره ممکن ای دیگه کارش اون تپیز کردن باشه چرا اون دیر می‌کنه کار دیگه نمی‌کنه اما این از اون زمان این طور بوده بله کانه مبایرن لهم من باید دیامو شخص به عمل ما معن دیالک الاز و یشت لهو قولهو لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیر حافتون این چه این بگه زندگی ما از همی شمشیر رو و قلاف و نحن مسترون علیه ها راسته این بعید بوده شمچیر تنهار بپرشد دستش بگیری به تا خونه خود خب به کسی میخواد به خود ظاهرن شمشیر رو غلاب بشتا با هم در زنه هم بودن زدارشون. و فعیت و معیشت و تجارت اعظم من فرعت سیوفی تلکل از منه از منه تل حروب سیفیه راسته خب شمشیر ما بحث در این جد نده این استظهاریشون راسته اما بحث در اینه که اینا ملازمات خارجی نه ملازمات عقلی در خارجی اینجوری آخی شمشیر یه انقلاب همش نیست کسی نخوره به جای نخوره، متأرم نبوده انقلاب رو بعد یه که متأرم تاریخی نبوده. اصر و سیف و ای احتياج لمان السیف، البته در کتاب‌های جای کرده اینه، سیف که کتاب و ای احتیاج لمان لمان السیف، لسان السیف، اله عمل الجلود. بحث جلود مستقل نمی‌ریزه، بحث لا. جلود در شمجی برای دلا فلا شبهت فی ان ابل قاسم و بلده به حسابه ها به روایه کان عملهم هم اغماد سیوف نه و انما سألو بعد اندهی المیته و شراعه ها و عمله ها و مسته ها و حمله ها علابه سیوف لابهی الجلود همان سنعه شیخه الانساری ترهن لروایت صحیحه سریحه صحیحه بودن اصطلاحی نداره صحیحه بودنش هم از کلم لسان لسان تریحه نه پی روایت من ابل قاسم السحیح. اون روایتا محمد ابن ایسان عرصه زهر یکیه قال کتب سهله اینی رجلون سیغل اشتر سیو و ابی آمن السلطان یبهر منها ان ایغن ان شغله لم یکن عمل سیف بل کان سیغل و به وقت در روایتین کان اشتر سیو و یغمدها و یبی آمن السلطان و لعله کان شغله مختلفن به حسب العزمان این عجیب عزیز بالایت لعنه که نمیشه از محمد استظهار کرد لعله بله خیلی تعبسه در تصفیح. اول سال اولیش معامله مامبلوکو در آخره نه کار یکی بوده کارش شمشیر شوده کارش شمشیری که شوده حد دادهها و آهنگرا بوده هم شمشیر درست میکنه آهن رو بشه به شمشیر در میاره هم تیز میکنه هم جلا میداده هم تازش فسخی... کلافش آماده میکنن دستش این کاری ای که مربوط به شمشیر بوده یه کسی برا اونجا دیگه میگه مثلا کلافشو از دخول دیگه میگی کلافشو شمشیر یوشده حمایر جهان را آماده میکنن به تازه میداده. متعاربی تعارمی که بوده این بوده بله ولی اللهو کان تاجر و له عمال اشتغلوا به تحقیق سیوف و العمال به تحقیق به سعی به سعیغت حالا فرضا اینها به نظر من, من اندر عباده خوردن اینها کاری و تأثیری در, تأثیر در سهم روایت نذارید اصل روایت این است که جلود جنود میته بوده هر که بنده احتمال مثلا از خارج میوردن فلیزا بیگه قوائم و سیز علتی توسن ما از سفر سفر از این نوع ماهی های بوده که پوست سختی داشتن مثلا در کشورهای سلم متعارف نبوده از کشورهای غربی اون زمان مثلا از آفریقا این کسی مطمئن آوردن یعنی هم بوده پوست و تمسا گدرش مثلا اینها حتی برور خرد برور خرد هم که معلوف اینا نبوده یعنی حالا برور کار این اونی که الان ما میفهمیم از مجموعه خود همین میوارد کار ج هم نداری از شواهد تاریخی این اول اینکهشون اومان داشته برره شخصیت مهم می هم بود بردهید یعنی بهرس تا متففا و افراد عادی نبوده که او چمچین به سلطان میشه افراد عادلی هم از سوالاتی هم میشید دادیم میشه که آدم ز میه مثلا سواج کرده ازیل خیر و فر این به سلطان میشه در به اصطلاح خواهد آن همون می‌خوام لا لا. خودش تشکیلاتی داشته، شخصیتی اجتماعی داشته، کار سنگین بوده. کارهای به مربوط به ساختن، سیغن و دسته شمشیری درست کردن. علاوه چفی درست کردن، کارهایی که مربوط به شمشیری بوده در اون زمان، ایشون در تجارتخونه خودش هم خرید و فروش میکرد هم میساخته و این هم این هم کار سردشت داشتن، کار تجاری بوده. استفاده مجموع این کارها رو میشه استفاده کرد. اگه بعد ایشون رفتن روی بحثه یک مقداری بحثه دیگه که دیگه من می‌خونم خدا حافظ می‌خونم بقیه کلمات هم یک مقداری بقیه علامه ده کرما مبالغ حالا فردا انشاءالله شاء الله تعالی به خدا توفیق بده و اصلا تو حالا خوب روایت نشدیم فردا ان خود الله خودمون مستدل روایت بشی سندش رو خود واسطه و واسطه سیغه رو رو واثقن فردا فرضاً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 من دخترم. یه شنبه پدرم هم از این دیشب میاد. یک واین از درسته باید از درسته باید از درسته باید نتیجه آخری که شما گرفتیم بود که سلس استقینی شما اون آخر آخر دیگه نوزیم باید اما نوایی سلام. بله. بله. بله. بله. و اذا جاءك من عندهم رسول فادعوه على دينهم وخذوا أجركم حسناً وكونوا عند الله صابرين شكراً وكونوا عند الله صابرين اهل محمد بن اتصال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>